اهلی ایمان بسوی ای جنگو جهادش تا کن راه نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بسوی ای جنگو جهادش تا کن rahina najati din wa watan ummat ra kun e ahni iman bardamani quranu sunna chang bezan baqanu falani li hasili khairu sawab امروز روزی سرگیری اعدای خداست کاشانهی مرادی شریران خراکم راهی نفاق راهی تباهی ملت است از این مرزی بدبوی پره زدوری کریم اردوی کفر ملکی ترا کرده آشیان بشکن حسار خیبر و تسخیری باب کن دیدی که کاروانی کفن پارگان گذشت برخیص بایی خشت و هم در کن Ey ahli iman basu yi jangujihati taqun rahina jati din watan, ham ummat ra intikhaf kun ey ahli iman bardamani qur'an wa sunna chang bezan baqanu falanili بس بار اجده های زمان را بسیلی خون و ایران بینای قشری ستم ارتکا کن از خونی دشمنانی خدا و تنهمه دشت و دیاری میهنی خود را خذاب کن با حمد بلند و با ایمان استوان خود بساز و هم دیگران یاب کن از دالی عیسی پی امیدوار باش و از مجهدی خود طلبی آفتاب کن ای احلی ایمان بسویی جنگ و جیها چیتاب کن Rahina najati din watan ham ummat ra intiqaq eh ahni iman bardomani damani Quran Sunnah can bi zan buqalufel amili husil khair sawaq in shabki istihalay dar با نور مهتاب قیامتی شهاب کن اینجاکی جای جلوی مردار خار نیست و زیبومی کرتسفیهی مهد عقاب نیست اگر خواهی نجاتی همین قوم سوگوار. در دور و بود کشوری خود انقلاب کن حجوم ببر بقافلی دشمنی زبون در قلب تو کی نزیع دو ازدراک کن ای اهلی ایمان بسوی جنگ و تا کن؟ Rahina Joti Dinuatan watan ham ummat ra ahni iman berdamani Quran Sunna can bi zan baqalu fil amili husil khair sawa kun bersan kari muhajmiqun razi amrika بست از خیش و مكتب خود کامیاب کن دانی کی چیستی و زا کستی کیستی بر تو صورت خود از حجاب کن دانی کی غازیانی تو انگلیس نسر چکان برها میانی سرخچ و حساب کن مشدارها میانی نفاق اندر کمین فکری زمان سازی اهلی نقاب کن ای اهلی ایمان بسویی ای جنگ و جیها چیتاب کن راهي جاتي دين وطن هم أمت را انتخاب اي اهل ايمان برداماني قرآن و سنة چنگ في با قول خير و سواق اي نوجوان شرد المستو Shukrusi sipo si honi ria di jawani sherdil mastu ohani. Shukrusi sipo si honi ria di shaboku. Sjastissa baba at king برماشه ایم و خود پیچو تا کن شستی سبا بعد که گواهی اگا نگیست برماشه ایم و خود پیچو تا کن ای احلی ایمان بسوی ای جنگ و تا کن rahina jati din watan ham ummat ra intikhab kun bardomani ahli iman bardamani qur'an wa sunna chang bezan baqanu amili li hasili khairusawab kun iman basui جنگ و جهاشی تاب کن راهی نجاتی دین و تن هم امت را انتخاب کن